حکایت بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان، بود بقال یورا توتی، خوشنوای سبز و گویا توتی، بردکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سودا جران، در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حازق بودی، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خاوجش بر دکان بنشست است، فارق خواج دید پر روغن دکان و جام چرب بر سرش زد. گشت توتی کل ز زرب، روزکی چندی سخن کتاف کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد، ریش بر می کند و می گفت ای نعمتم شد زیر میغ، دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان، هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را بعد سه روز و سه شب حیران و زار بر دکان بنشسته بود نومیدوار مینمود آن مرغ را هر گون گفت تا که باشد کنده را او به گفت جولقی سر برهنه می گذشت با سر بیمو چو پشت تا ست تشت توتی اندر گفت آمد در زمان بانگ بردروی سد که هی فلان از چهی کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچه خود پنداشت، صاحب دلغ را، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گر چه ماند در نوشتن شیر، شیر، جمله آلم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد، همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتند، گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خر، این ندانستند، ایشان از اما هست فرقی در میان بی منتها، هر دوگون زنبور خردند از محل، لیک شد زن نیش و زیندیگر اصل هر دو گون آهو گیاو خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زن مشک ناب هر دو نی خوردند از یک آبخر این یکی خالی و آن پر از شکر ست هزاران این چونین اشباح بین فرقشان هفتاد سال راه بین این خرد گردت پلیدی زو جدا آن خرد گردت همه نور خدا این خرد زایت همه بخل و حسد وان خرد زایت همه نور احد این زمین پاک و آن شورست و بد این فرشته پاک و آن دیوست و دد هر دو صورت به هم مانند رواست، آب تلخ و آب شیرین را سفاست، جز که صاحب زوق کشناسد، بیاب او شناسد آب خوش از شور آب، سهر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر برمکر پندارد اصاب. ساهران موسی از استیزه را برگرفته چون اصای او اصا زین اصا تا آن اصا فرقیست جرف زین عمل تا آن عمل راهی شگرف لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله آن عمل را در وفا کافرانن در مری بوزین تب آفتی آمد درون سین تب هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند که از مرد بیند دم بدم او گمان برده که من کشدم چه او فراکی آن استیز رو این کند از امرو او بحر ستیز بر سره استی زیرویان خاکریز آن منافق با موافق در نماز از پی استیزا یت نمییاز در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات مؤمنان را برد باشد آقبت بر منافق ماتند در آخرت گرچه هر دو بر سر یک بازی اند. هر دو با هم مرزی و رازی اند. هر یکی سوی مقام خود رود هر یکی بر وفق نام خود رود مؤمنش خانند جانش خوش شود ور منافق تیز و پرآتش شود نام او محبوب از ذات وی است نام این مقبوز از آفات وی است میم و واو میم و میم نون تشریف نیست لفظ مؤمن جزپه تعریف نیست گر منافق خانیش این نام دون همچو کجدم میخلد در اندرون گر نه نام اشتقاق دوزخ است پس چرا در وی مزاق دوزخ است زشتی آن نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بهر ظرف نیست حرف ظرف آمد در او معنی چو آب بحر معنی اندهو ام ملکتاب، بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان، برزخون لایبغیان، وانگهین هر دو زی یک اصلی روان، برگزرزین هر دو رو تا اصل آن زر قلب و زر نیکو در ایار بی محک هرگز ندامیز اعتبار هر کرا در جان خدا بنهد محک هر یقین را بازداند اوز شک در دهان زنده خاشاکی جهد وانگه هار آمد که بیرونش نهد در هزاران لقمه یک که خورد چون درآمد حس زنده پی به حس دنیا نردبان این جهان حس دینی نردبان آسمان صحت این حس بجویی دست طبیب صحت آن حس بخواهید از حبیب صحت این حس ز مأموری تن سهت آن حس ز تخریب بدن راه جان مرجسم را ویران کند بعد از آن ویرانی آبادان کند کرد ویران خانه بهر گنج زر و از همان گنجش کند مأمور تر آب را ببرید و جورا پاک کرد، بعد از آن در روان جوروان کرداب خرد، پوست را بشکافت، پیکان را کشید، پوست تازه پس از آن بردمید، قلع ویران کرد، از کافر ستت، بعد از آن بساختش صد برج و ست، کار بیچون را، چه کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد، گه چنین به ماید و گه زد این، جز که حیرانی نباشد کار دین، نی چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و قرق و مست دوست، آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی دوست، روی هر یک می میدار می دار پاس، بوک گردی توزد خدمت روشناس چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست، زان که سیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبت مرغ را آن مرغ گیر، بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابت دام و نیش، حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلی میزان فسون کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بی شرمی است شیر پشمین از برای کد کنند بو مسلم را لقب احمد کنند بو مسعلم را لقب کذاب ماند مر محمد را اولل ماند آن شراب حق خطامش مش مشک ناب بادر او ختمش بوبد جن و عذاب